ادعا هم انتظام از ایک سرم خودشون رو خدا میدونه شد و میگفتن نحن و از این فرزندان خدا هستیم و نجال وقتر هستیم و یکتر رو گردن از انسان‌های های دیگه پیشتاستر و مستعتر به جنت هستیم و خدا به رابطه بسیار پنگاتنگ و ویژه در حد رابطه نصبی و قومکیشی داره ما فرزندان خدا هستیم و احبا و ما محبوبان خدا هستیم این ادعا هست. از یک طرف ادعا از یک طرف انتصاب حالا یا این انتصاب به ذات عهدیت الله یا این انتصاب به انبیاء گذشته و به شخصیتها و رجال گذشته ادعا میکردن که ما حق به موسی علیه السلام و السلات. و ادعا میکردن که ما قومی هستیم که بنی اسرائیل هستیم اسرائیل دو بخش داره اسرائیل این یعنی الله و این لقب حضرت یعقوب علیه السلام یک لحظه عبرانی هست یعنی ما پیغمبر زاده هستیم ما از نسل حضرت یعقوب علیه و سلام که باز این نسل امتداد داره به حضرت اسحاق و نهایتر به حضرت ابراهیم علیه و سلام وصل میشه لذا ما پیغمبرزاده هستیم ما از همه جلو و پیش تاستر هستیم حالتاله تمام این ادعاها و انتصابهای پوچ تو خالی رو با یک جمله الله جواب میده در دنباله همین آیه که ادعا و انتصاب اینها مطرح میشه که نحن ابناء الله و احباب اللہ تعالی میگه فلم یعرضی بکن پس چرا الله تعالی شما رو به گناهان شما خاص میکنه؟ چرا الله تعالی شما رو در اثر گناهان شما گرفت میکنه؟ چرا شما دارید در ادوار مختلف تاریخ چوب خداوندی بر شما بلند شده و به کرات شما تاوال تنبیل شده؟ اگر شما این ها و ادعاها برای شما کافی می‌بود، قطعا شما باید امروز عذاب الهی رو نمی‌چشیدید. اون چیزی که در نزد خداوند ملاک و معیار عذاب و اخاب است یا ثواب هست اون این ها و این ادعاها نیست. متأسفانه این امروز گریبانگیر ما امت هم شده. کثیرو ذکر ترین قوم در قرآن بنی اسرائیل هستن به اندازه ای که بنی اسرائیل در کلام الله تعالی از ویاد شده هیچ قوم یاد نشده این قوم چرا باید این همه به در کلام الهی از او یاد بشه چون حالات اخیر این امت به بنی اسرائیل بسیار نزدیک بشته یعنی ادعاها انتصابها تعصبات کرد میشه سر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 اگر این بلا گریبانگیر مذاهب اسلامی ما بشه، سرقه ها و نحله های مختلف بشه، یک زیر از افرادی که در میدان اصلاح و تسخیه و خودسازی میرن، همی که با یک بزرگی تعلق اصلاحی برقرار میکنن، فکر میکنن به حرم امن الهی داخل شدن. من دفعه حوکانه دیگه هر کار میخواد بکنه هر عملی میخواد داشته باشه هر شیوهی میخواد داشته باشه من جنتی هستم چون با فلان بزرگ در ارتباط هستم این یک غلوبه این یک افراطه بر همین الله تعالی به اهل کتاب میگه لا تغلوفی دین کن تو دین و غلو غلوب نکنی در شخصیت ها و رجال دینی غلو نکنی حضرت علی رضی الله تعالی میگه در شعن من در حق من دو گروه هلاك میشه یکی محب مفرد کسی که محبت افراطی محبت توعم با قلوب با افراط با من داره من را از حد بشری بالاتر میبره صفاتی که مال انبیاس به من میدن صفاتی که مال خداست به من میدن من از اون حد بشری من بالاتر میبرم این گروه هم هلاك میشن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 فرد بریم این فرد صلاحیتش چطوریه وقتی که رسول باقی علیه السلام پاره سن خودش لخت جگر خودش سردار زنان بهش فاطمت زهرار و علی میده چی؟ یعنی علی همه چیز دونه وقتی که عثمان غنی میشه زنورنی دو تا دختر پیامبر یکی بعد از دیگری پیامبر بهش میده. دکتر اول وفات میکنه دختر دوم رو پیامبر بشمیده میده دو صلاحیتش از اهل بیت از آل رسول دو مرتبه صلاحیت میگیره ولی اگه انسانی بیاد از اون کسی که دوبار از اهل بیت دو بار از آل رسول صلاحیت گرفته یاده بگه من صلاحیت اینو قبول ندارم، انگه بالله تو که خودتو داری رد بکنی کنی برای اون کسی که علی مرتضا رو که داماد پیانبر هست علی مرتضا رضی الله تعالی عن که جزء عشره مبشره هست علی مرتضا رو که سرپرست یک خانواده هست که این خانواده دربست بهشتی هستن عجیبه یک خانواده بهشتی خانواده ای که دنیا قبل از آخرت پای پرونده بهشتی بودن اونها رو پیانبر امضا کرد مثلا ما امضا کرد که شما جنتی و بهشتی هستید بلکه پیانبر فرمود حسن حسین شما دو دو سردار جوانان بهشتی، تو خطبه های جمعه اهمه جمعه و خطبه دوم همیشه اینو میخوند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 این با رگ و پوست و خون ما عجیب شده. به جرعت من میتونم بگم که در هیچ هیچ شهر اهل سنت نیست که ما مسجد حسنین نداشته باشیم یا مسجد حضرت علی نداشته باشیم. شما یک شهری اسم ببرید، فلان شهر اهل سنت در فرنجا هست مسجد حضرت علی ندارد یا مسجد حسنین ندارد شما یک فامیل اهل سنت به ما معرفی بکنید. که نام این توش نباشه یا نام علی مرتضا توش نباشه یک فامیل به شما نمیتونید پیدا بکنید یک فامیل احساسون ندارو که تو این فامیل نام حسن نام این و نباشه یا نام علی مرتضا رو بیالله این جز رگ و پوست و خون ما پیغمبرنا علی رضی الله تعالی فرمود در شعن من دو گروه هلاک میشه یک گروه اون کسایی که محبت افراطی به من دارن و میکنن اون چیزی که در حقیقت من رو به عنوان یک شخصیت فرا حتی از پیغمبر گویا من جلوتر میبرن صفاتی که مال الله به من نسبت میدن اینقدر به محبت من افراط میکنن که من رو در الوهیت خدا یا در ربوبیت خدا منو شریک میکنن یا در علم الله من شریک میکنن علم فقط مال الله علم ما مایکون فقط مال الله مال هیچ بنی و بشری نیست مال هیچ ولی و نبی نیست ما اگر بگیم خدا هم علم کانومای کند داره فلان، بندش ما داره. هم علم کانومای کند داره. یعنی این دو تا با هم برابرند تو علم، این که شرک در شد که خداوند در در آیهاللکورسی چی میگه؟ میگه ولا صیطون به من علمه شما به شیء من علمی علم من نه، به من علمیی هم نیت رو پیدا کنی. به علم من که منه. ولا يخيطون بشيء من علمی الا بما شاء چیزایی گاه وقتا به شما نشون میدن به ماشا اون چیزی که من بخوام اما این نیست که شما همه علم کانون ما یکو گاهی الله از طریق معجزه گاه از طریق معجزه به نبی و از طریق کرامت به ولی الله داره چیزایی نشون میده یعقوب علیه السلام بوی پیراهن یوسف رو خدا یه ذره پردر بیزنه کنار بو رو استشمام میکنه بینایی پیدا میکنه اما همین یعقوب یوسف رو ته چای کنان که بهش نزدیک تر بود نمیدینه نمیدینه حالات ما مثل برق جهان است گهی بر کارم اعلانش نشینم گهی بر پشت پای خود نبینه دلیلی نداره چون ما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 طبق گفته عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله حضرالی آخرین دعایی که در زندگیشون کردن این بود که اللهم لا تجعل غبری و فرن خدای قبر من رو بطی نکن که پرستش بزرگان بزرگانه دنبال این نبودن که از قبرهای خودشون زنده های خودشون رو نمیخواستن بت کنن زنده های خودشون رو نمیخواستن کاری بکنند که مردم در مقابل اونها سجده کنند، مردم در مقابل اونها تعظیم و کرنشی که مال خداس بکنن بندگی که مال خداس بکنن عبادتی که مال خداس بکنن برای زنده این گوارا نمیکردن؟ کجا برای گبور خودشون اینه گوارا می اصلا اون با رسالت و با اون اهداف آلی انبیا و اولیا منافات داره اگر ما قبور اونها رو فرستش بکنیم. بله زیارت و قبور ما میریم ما ایتال سواب میکنیم ما در حقیقت به خاطری که در زمره این بزرگان محبین این بزرگان داخل بشیم میریم کنار قبور و اینها فاتحه ای اخلاص میخونیم سوابشونو به این بزرگان میبخشیم میریم و قبرستان درس عبرت می‌گیریم که این آخرین منزل آخرت هست آخرین منزل دنیا و اولین ورودی آخرت هست جو درس میگیریم میفهمون خط رفایان دنیا چیه؟ اما قرار نیست که تو قبرستان بریم و قبور رو عبادتگاه درست کنیم مای ما کار رو نمی کنیم. رسول الله علیه و با وجود این که اهل لعن و نفرین نیستن و از لعن و نفرین فریز می کردن حتی برای اون کسانی که در اهد زندانش رو شکستن سرش رو خونین کردن برای برا اونها بدعای نکرد اما رسول بقران علیه الصلاه و السلام یهود و نصارایی که قبور انبیای خودشون رو معبد و عبادتگاه درست کردن اونها رو نفرین کردن. خدا لعنت بکنه یهود و نصارا رو که قبور انبیای خودشون رو معبد درست کردن، محل عبادت درست کردن. بله، رویه معینه ما, ما نسبت به بزرگان نه غلو میکنیم نه اونها رو از شعن اونها بالاتر می‌بریم، نه نه خدای نگرده نسبت به اونها بغضی داریم نفرتی داریم عداوتی داریم بغض و نفرت و عداوت با صحابه رو که مهر رضی الله صالحان و رضوعان به فروندشون خورده مهر تعیید النبوهد به پروندشون خورده کسی این مهر رو قبول نداره ما تو اسلام شک داریم علی مرتضا حسن و حسین سرداران جوانا بهشت فاطمه الزهرا سردار زنان بهشت اینها جزء باور ما هست جزء اعتقاد ما هست محبت اینها هر منبر نماز جمعه ما پر از محبت اینها هر محراب مسجد ما پر از محبت اینها ما این رو دوست داریم محبت اینها تو رگ و پوست و خون ما هست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 یعنی الله تعالی در میدان محشر اعلان نمیکنه اون کسایی که تو دنیا مدعی محبت موسی بودن بفرماین برن بهشت معاملاتشون هر چی بود معاشراتشون هر چی بود اعتقادات و باورهاشون هر چی بود مهم نیست مهم اینه که اینا ادعای محبت موسی میگردن بفرماین بهشت میدن اینو اونوری باشه عامیانه بود یعنی تو میدان معشر نمیگن اون کسایی که ادعای محبت ایسا میکردن در از محبت ایسا داشتن جشن تعمید برپا میکردن جشن تعمید یک جشن خودساختهی تو عالم نصارا ایتفل و نوزاد رو میگیرد و توی کشتی و توی در حقیقت ظرف بزرگی که ترکیب برایمه های مختلفی داره مراسم شه آینی از فرد میکنن بچه رو میزنن توش بلند میزنن بعد میگن حالا طبیه مح یعنی شید. با یک تشتر رنگ یکی به یکی یک سر تو آب بلند بگاره و تا آخر عمر واکسینه بشه و تا آخر عمر بشه جز محبین ایسا و هر کسی این تشت رو نداشته باشه او محبت ایسا چه؟ نداره. مارک بشت بزنه که این محط به ایسا نیست. چرا مید؟ چون این نداره، چون این رنگ نداره، چون جشن نداره. اینا از کجا تعمیز شما؟ خودِ اِثارِ احسانات و سلام اگر بیاد امروز تو دنیا و فقط پیروان خودش رو بشناسه. بشناسه آقا این تقسیمات جغرافیایی، تقسیمات سیاسی، تقسیم های مذهبی و دینی رو بشناسه. اگر آمریکا چه دین رسمیش چیه؟ نژادشون چیه؟ قاره‌شون چیه؟ آسیا چیه؟ فلان کشور چیه؟ فلان کشور چیه؟ مگه سوال میکنم. اگر مزکی ساب بیاد دو مرتبه تو دنیا بنفرد و بهش بگن خودت برو تو دنیا بگن پیووان خود رو پیدا. بر. به نظر شما این کسایی که ادعاه مطل ایاب میگارن ت ایسا میگه با همین لختی ها با همین اوریانی ها با همین جزام اخلاقی با همین فساد با همین دیبند وبارری با همین در حیقت خرابی های که توش وجود داره سرفر با جشن تعمیر از اعتصابش اینا خود. این جشن کریسمس و جشن میلاد برام میگیرن. چی میخوام دیگه؟ جشن میلاد برام میگیرن اینقدر باشوکو از اون طرف دیگه میان جشن تعمیدم دارم بچه ها میکنم به عشق من پس تمام دیگه اینا ما ادوین من هستن عاشقان من هستن بقیه همه جهان نمی ایسا میگه اینا سال اگه حضرت دو مرتبه تو دنیا میاد بشیم تقسیمات جغرافی و این تق در حقیقت ایدئولوژی و مرزبندی های عقیدتی رو بهش نگم که آقا فلان کشور مذهبش چیه فلان کشور دینش چیه فلان کشور نمیدونم فلانه بهش بگم خودت برو تو دنیا بگرد چیکار کار کن؟ پیروان خودت رو پیدا کن به نظر شما کجا پیروانش رو پیدا میکنه؟ میره تو سهیونستان میگرده میگه ماشالله این همه فتلا هم کردی؟ سبرها ایلا شما کشتید این همه رو شارون دسته بزنش خیلی خوب بود این همه رو قتل آم کرد این همه رو نفت کشی کرد به عشق من چون این همه ولوکاس ها درست کردید به عشق من آدم پدی درست کردید به عشق من این همه مسلمان تو اردوگاه، این همه پناه جوهار رو تو پناگاه ها کشتید که ثابت کردید محبت موسا در دل دارید شما مراسم های رسنگی من شما نام منه تو دنیا بلند گردید پس شما جنتی به نظر شما اگه موسی رو تو دنیا بیار، پای پرونده سبیونیستا چند می نیسته؟ نمرشون چنده تو محبت این حالا بیدن در سطح پایینتر ما مسلمانان هر کدوم ما مدعی محبت یکی از صاحب است.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 ندگی مام بیاد اون بزرگان بیاد عروسی منو ببینن ببین این عروسی پیروان شما هو چی میگم این عروسی که از عروسی یزید بهتره بابا یزید این تو چه بی جی میگن چی میگه یزید بده بحث بی جی کجا ولاد بود یزید بده به قول معروف این ماشین عروسایی که شما درست میکنید با این همه خرجایی گزاف این همه پول تالارها با این همه توی این تورم توی این رکود اقتصادی توی این شرایط بد اقتصادی این رقابتهای شما باز که سر تالارهای نیدیدان چنین و چنان همون همون مستدعفترین شما حاضر نیست بیل بکنه میخواد تالار عروسی عروسیشو بگیره که از تاق یزید در باشه چه تو که از طاغی یزید دنبال چیز بزرگتری میگردی تو که از فساد یزید دنبال فساد بزرگتری میگردی تو که از اون بی‌بندوباری یزید بی‌بندوباری‌های بزرگتری داری آقا یزید هر چه بد بود هر چه مفسد بود هر چه و خنارشام بود همین قبول. هم قبول یزید اینو گوارا نمیکرد بله تو تاریخ آمده یزید شراب میخورد. یزیر گاهی یک درمیان شترنجی نمازا را غذا میکرد یه بعدی میخود یه بعدی یه بعد فلان بیکرد و یزیر بازی با بعضی از حیوانات و پرنده ها رو دوست داشت اینا فسقایی که به یزیر میزنند واقعا زیبنده هم بود فاسقم هم بود همین بود اما یزیر اینو گوارا میکرد که زنهای لخت و نیمه اریان رو زنهای فاسد رو تو قصرش بیاره به زن و بچهش بگه نگاه کنید خوش باشید. هر هرچه یزید بد بود و بی بود رو گمارا نمی کرد که لختی اوریانی فساد رو بیاره جنوی زن و امروز کدوم خانه مسلمان هست الا ماشاءالله که از سیری مبتدر دختر مسلمان نشسته داره بی نگاه میکنه از این نیمه اوریانی ها از این بیبندوباری ها از این روزبیگری ها از این فیلم های عاشقانه دختر تو میخواد یاد بگیره؟ آخه قانون فطرته که وقتی یک بچه طفل معصول دو بار ده بار صد بار یک فیلمو نگاه کرد کنار یک گناه نشست اون گناه دیگه براش سبک میشه اون گناه براش عادی میشه بگو هزشتی اون گناه از دلش میره بعد میگه اه اه اه. چرا دختر فرامی شد چرا دختر زد و بند داشت رابطه نامشور او داشت تو فضاهای مجازی با این و اون خدای من که لغمه حرام به ندادم خدای من که به قول معروف خانواده ما مادرم مادر بزرگم بیعیا نبودن خدای چه بدشانسی این چه پیشانی سیاریه چرا اینطوری شد چرا اینطوری شد یه شب اینطوری شد یه شب فرار کرد یه شب رابطه نامشروع و نامحرم برقرار کرد و یه شب آب روی خاندانو برد نه نه نه این تراکم اتصاد چندین ساله بوده که تو بخورده این بچه جد تو فطرت این رو محس کردی تو مسکولی تویی که با دخترت میمشستی تا نیمه های شب لختی میدیدی قریانی میدیدی فساد میدیدی فیلم های و محرک از جنسیتی میدیدی آقابتش همینه گندم، از گندوم بروی از جوز جوک جو دیدیت آوان کسی گندم به کار دعا کنه خدا یا من که دیگه غیر از گندم چیزی نداشتم، اما تو قدرت داری جو در بیاری ها. جو بگاره و الله من که بگه جو امسال هم هونتر بود جو گیرم آمد جو کاشتم بگه اما تو قدرت من الله تا ای ال الا جوهای من رو گندم بفرمان میشه؟ چه تو وقتی دیم که میرته میگه خدا یا من که بچه هر فساد و هر گناه و هر چیز رو برش ریختم جلش اما خدا این بچه من رو حیای فاطمت و زهرانستی بفرمان خدا اين این, این, این دختر من رو مثل از آج مستحرات مثل اماها المؤمنين مومینی دختر محجبه به تمام معنا وگه چي چی کاشتی تو روح و روحان بچه چی کاشتی تو قلب معصوم این بچه این بچه رو کجا پرورش دادی آبا من یکی رو گوش میگیرم از حسابی بیارم خونم حالا که دیگه ماشاءالله گوش شده قیمتش چقدر پلی گوشتر رو بریم داره خونه خناه و بد شروع کاری نصیحت کرد. جناب گوشت. خیر ها دارم نصیحتت می کنن. خوب ششتون گره راست جمع. فضا فضا آلوده ایه. انواع ویروس ها انواع میکروب ها. انواع به قول معروف مرند مختلف. هی یکی یکی شده. تو الان خبر داری که هستا سیستم های کامپیوتری ما اونا دارن ویروس می گیرن. تو شنیدی الان که دیگه ویروس سرایت کرده حتی به قول معروف به ارسال مجازی به تو که دیگه به طریق اولا ویروس و انگل و انواع مرض ها میره من به تو گفته باشم نصیحتت کردم از من اطماع محجت موازب باش ویروس و انگل و میترو ببید نرسه از ما تمام بعد گوشتر میداره و تقانه رو میدونم بعد مدتی میبینه این کهر میزد بعد مدتی میبینه این کانون مرض ها شد بعد مدتی میبینه اه این اصلا طور مرض شد بعد میگه جناب نصیحت از ده نگفتم جناب این گوش نصیحت نمیفهمه. این گوش یک فضا میخواد یک محیط میخواد اگه تو اون فضا و محیطی که بنده او هست و با او سنخیت داره و او مجانست داره گذاشتی اصلا نصیحتش نکن بذار تو فریزر خانه هست نصیحتش هم نکن هیچ چیش نمیشه. اون پروتئین، اون ارزش قضایی همیشه باشه هست؟ حتی، حتی، اگر این کریم کنگوان داشته باشه، تو فریزارت بذاری بعد از مدتی میشه؟ شنیدیم که اونم یه چی میشه؟ محیط میخواد، حالا من بچه تو محیط قرار ندادم، نه محیط دینی، نه محیط ایمانی، نه محیطی که صحبت خدا و رسول باشه، فضائل توش گفته باشه، زندگی بعد از موت قسمت عظمت ذات احدیت الله از, صحابه، از صحابیات از اهل بیت هیچ قصه ای سر و دوش نداره بچرم تو بیمه وی یا کنار تلویزیون تجنیشی از میخواد چی میاد میگیره یا کنار ماورن تجنیشی از چی میقادیاد میگیره یا تو کوچه بازار وی میگه نمیذارم با کی میگردی چی از میگیره یا تو مدرسه دوست و رفیقش کیه با کی مشخص و برخاست داره که امروز تفار به دبستان‌های مارد فساد به درستان های ما رسید. یک زمان می بهتره بترسید اگر کاست ویدیویی دست دیگانش دیدی. دیدید. با بیلاست. اما حالا نه کاستی زیر و غلط کنی و فرار کنی کجا و کجا که این کاست رو من کجا ببینم که کلوز یا سفیدی بذاری و آرزو کنی که کاش رنگی می نه الان گذشته این حرف ها. موبایلی که دست همین طفل معصومت دادید. می میترکیدن بچه ها ویلگرد شن. اما حالا بچه ویلگرد نمیشه تو اتاقش درش هم روش خودش قلب و حالا ویلگرده از ویلگردی قدیم به مراتب بسته یه،, یه لحظه تو اتاقش بچه هست نشده یه لحظه میره لوسانگلیز می که صاد اونجا را تجربه کرد برگرد میاد تو اتاق بعد تا بابا هم میاد میشینه کتاب جالشو غز من دارم حالا چه طفل این همه میخوره بابایی خورده. رو خود پشار قدم نهار. این سال کنکور قدم شد ساله هرده. وانی نه بگه بابا با با با بخوره. واسه بابا میره کتاب بسته. هدا فراغ بینی با و بینه. بعد مرده با سرش دو مبایل خودش. فساد مسکو رو فساد آنجلس رو فساد تلاویب رو فساد غالی رو همه رو یه لحظه تو تقضی زرف 5 دقیقه تجربه میکنه به همگردی چه فکر کردی برای بچه چه برنامه‌ای ریختی برای تربیت اصلاح این بچه فقط فکر می‌کنی هر چند مدتی بچه تو پیشه دخترتو نگاه کن دخترا مویدوی دانشجوی محیط مختلفی ها اونجا خیلی فساده الان و الان بدترین نوع ازدواج دانشجویی شده چون خیلی عاطفی عقلانیت توش کمه خیلی زود شکست می‌خورن نگاه کن محیط تحصیلی ما محیطی ناسالم شده مواظب خود باش دخترم میبینم با موبایل سر گوشی‌ت میجنگی، مواظب خودت باش. از ما گفتن، تو سنتیت میکنیم بعد یه میکن خوب شد، عدده ای کردن مسئولیت ما رسالت ما انجام شد، دوباره پدر و مادر. بعد مدتی که یک افتضاح بزرگ خدایانه کرده به بار میاد. بعد میگیم چرا اینطوری شد؟ حالا پدر خود زنی میکنه، حالا پدر به سر و صورت میزنه، حالا پدر میگه این چه بدبختی بود؟ چرا اینا به سر من اومد؟ چرا این بدبختی‌ها کجا اومد؟ کجا اومد؟ تو نمیدونیم شرایط عوض شده چند دهه جلوتر بچه رو ویل می‌کردیم، محیط خیلی آلوده نبود بچه ایدعال و بچه خیلی قوبی هم نمیشد بچه مفسدی هم نمیشد کلیستاری و کراکی که تمام پلک و سرشو خراب کنه رایی برگشت نداشته باشه نمی‌شد. نمیشد ته ته تای ته تای این بود که بچه مای نقضیگار تو درستشه. تهه تهه تههش این بود که میگفتن یک کاسه تو ویدو دست دیدم باش تهه تهه ته تههش این بود که میگفتن دخترت مواظب باش این دخترت به قول معروف بی هیا شده تو جماعته میشینه خیلی حرف میزنه. این تههش این بود دختر که خیلی حرف میزد بهش میگفتن بیایار بزنه قدید. یک باب فقیر باز کرده بودن قدیم میگفتن سکوت دختر تو مجلس عق لبخند دختر تو مجلس عقل اینا علامت چیه؟ بگی رضا. رضایت دختر دیگه شرمش میاد حرف روزن اما حالا چی شده؟ دختر به ددستونا رو کرده و صحبتها رو کرده و عشقش رو پیدا کرده و به قول محلوم کلی زد و من داشته و حالا بعد از مدت‌ها به عشقش میگه به بابا بگم بعد میگه حالا دیگه آره اونم به فهمه بد نیست اگه چی که زندگی خود ماست ولی خوب بازم بگو بعد میره به بابای یک شوی بابای رو گپریس می کنیم بابا تمام شد پیدا کردم عشقم و تمام ما با همدیگر صحبت کردیم تمام من به خوشبختی ها رسیدم اونی که میخواستم پیدا کردم شهر رویاه ها شهر آتلانتیس تمام همه خوب ها بابا شما چی بیگه؟ بابای بیشه های دفع خوشکش میزنه لبخندی بزن علا. لبخندی که پشتش دنیای همه یا سکوت کنه دختر میدی کف میزن و میگه چی؟ بابا لبخنده تمام چه نید توضیح بست بینید شراحی صد درصد عرف شده الان گذشته نیست پنبه یه از دوش بیرون کنید صحبت برای یه چیز دیگه بود به جای دیگه ایدم من صحبتم این بود که اللح جنت رو به ادعا و انتصاب نمید امروز که من دم از محضت صحابه و صحابیات میزنم، اگر فاطمه و زهران الله و تعالی انها پاره تن مستخاب بیاد تو خونه من دیگه به دخترهای فلانی نمره بده به حیاشون به هجار بشون به غیرت بینیشون به شهامتشون به شجاعتشون نمره بده فاطمه و به دخترهای خانهای های ما نمره چند می ده. امروز اگر سیدنا حسین رضی الله تعالی عن دو مرتبه بیاد و بگه آقا برو تو خانه های ها بشون نمره بده باور برو شاید نمره که به یزید داده پایین تر از رو به من بده چون چیزایی که تو زندگی من تو زندگی یزید نبود اگر فروق اعظم بیاد اگر صدیق اکبر بیاد بگه سری بزن به این خانه ببین چه حواره. نمره بده بشون نمره ما چنده؟ یه برانداز زندگی ما رو کنه معاملات ما رو. دزدیق نیست، کعک نیست، فریضه نیست، خیانت نیست، احتکار نیست. به بهانه اینکه دلار گران شده، خودمون داریم به خودمون ظلم میکنیم به بهانه اینکه آقا از اونجا یه خشخشی شده تو مجلس یا نشده، اینجا مینه همه چی بالا؟ خودمون داریم به خودمون ظلم میکنیم خودمون داریم بدترین ها رو به هم دیگر روان بعد میگیم چرا رنزیت امتره شده چرا شرا شده معاملات ما امروز نمرش چنده معاشرات ما نمرش چنده تو معاشرات اسلامی اساس معاشره اسلامی توی یک حدیث پر برد میکنم میگه المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یمی مسلمان واقعی، مسلمان واقعی، نه مسلمان شناسنامه ای، نه مسلمان موروثی که اسلامی از باباش بهش ارث رسیده. خودش هم نمی چرا باید محب صحابه باشه، موقع پهلوی باشه، باباش چون محب بوده اینا محب بده. خدا میدونه اگه تو خانواده یهودی بزرگ میشدی، تو خانواده مسیحی بزرگ میشدی، چه چیز دیگی، حالی دیگه ای داشت. باباجی کارا رو کرده، اینا داره میکنه؟ نه نه. اینطور مسلمان شناس این اینطور مسلمان این اینطور مسلمانی که خودش از اسلام خودش پرد یک اسمو داره یرک می این مسلمان نه یه مسلمان واقعی پرمبر فرمود: المسلم مسلمان واقعی که من المسلمون من لسان حوایده مسلمان های دیگه از زبانش آسوده باشن به من چه که فلانی چرا عروس نشده؟ به من چه که چرا فلانی رفته زن دوم گرفته؟ تو نمیدونی با این سوال نابجای تو چه دلها میشکنه؟ چه شخصیت خرد میشه؟ تو نمیدونی با این زبان داری چه ضربه های مغلقی به روح و روان مردم تو جامعه میزنی؟ امنیت روانی مردم رو تو جامعه چقدر تو داری مفتوش میکنی؟ با یک سآل نابجا؟ یه سوال نابجا همین سوال نابجا که باعث بشه ببین مسلمان بشکنه شخصیت یک مسلمان خورد بشه همین سوال حرام یعنی چه چرا سرک بکشم تو زندگیهای مردم چرا تجسس بکنم تو حوزه فردی مردم چرا تطبیق و بکنم همش جست و جوی بدیهای مردم بکنم چرا دنبال نقطه ضعفم چرا ذره بین دست گرفتم خطاهای مردمو رو گنده بکنم این معاشره کی؟ این معاشره از کجا من یاد گرفتم؟ تو کدوم مکتب؟ تو کدوم مدرسه؟ به خدا معاشری که توش غیبته توش تهمته توش نمامیه توش دلشکریه توش زبانها مثل نیش به هم دیگر می روح روح روان را آزارده میکنه. این معاشره معاشره احل بیت نیف معاشره نیست، نیف معاشره مسلمان های صدر اسلامی ویلو لکل همزتلو موه حیبجو حیبتگر ویل براش بیان شده ویل برای معاشره ل ویل. ویلو للمتقفین مقایی بخواد حق مردم میده زورش میاد مقایی بخواد که مردم رو پاس کنه زورش میاد مقایی بخواد قرض مردم پس بده زورش میاد موقعی که میخواد حق مردم رو تکمیل بشون بده، خیلی این میزنه، این بر از تایش بذارم، از تایش بذارم، کارگر بیشتر رو اومده تو خونش کار کرده، عرق ریخته، چند ماه و چند سال پولشو نداده، بعد از چند ماه و چند سال که تورم رسیده به کجا؟ اون پول اصلی رو به خاطر برگردوند، تازه بهش خیانت کرده، اون موقع تازه میاد حالا بعد از یک سال شانه زدن از سر میزنه، از ته میزنه، از بغل میزنه، از کنار میزنه، آخر یه چیزی هم بهش میده، بعد میگه به خدا اگر میخواستم همینم میتونستم میتونستم ندم. یالا، من ناتم می‌گندم. نا؟ برو دادگاه. به خدا قسطی میکنه موهای سر سفید میشه مثل دندورا چه کاره پاس کنه. یار دیگه خدا نیست، دیگه آخرت نیست، دیگه اگر شحنه قاضی و اگر دوره وکیل رو سرت بالا نباشه، که دیگه فکر آخرت نداری، تو ترس از الله نداری، خیلی راحت آخر میگه با مننت پولش از سر زده، از په زده، از بغل زده، از اون بغل زده، آخر با من هم میگه به خدا اگر میخواستم به ندم، خیلی راحت میتونستم بیت ندم. می رفته قصدی می کردی تا آخر عمر بعد قصد قبول می کردی من خیلی آدم خوبی بودم که بدتار بس شمعت صدیق اعتبر زمانی تو سید شهده های دورانی تو چه ایسار بزرگی من منت بزرگی خیلی مهم خیلی مهمت تا دم درم باید در دقیقات بری که آقا چو کار کرده بعد یک سال چونتو به پرسد آقا صبح اول مقصیل هم گای وقتا نشسته آقا ماشاءالله پرلکان هواپیما هم گرفته و برو بیا عمره و حج و فرز و نفل و فلان و فلان و فلان پیشانیش هم دو روز که به سنگ اگر اجار رو لطولت پرسد کاش یه در تو محکمتر که این سر جاش بیاد. آقا رفته سنگ به شیطانم هم زده برگشت اومده. گای وقتا اینقدر استوانی شده برای اما حرکت نمادین سمبولیج سمبولیک تا تو یاد بگیری که مثل ابراهیم سنگ بر شیاطین بزنی، سنگ بر وقت و سحا بزنی گای وقتا حاج اینقدر از خوده در بیرن که آقا سنگ میزنه که ببانه کشش را میزنی بس تجار آن شش و سنگ و اونجا ذری حرکت نمادین و سمبولیکی بود نفرت و تو نشون داری یک حرکت قشنگ ابراهیمی انجام داری تا بفهمی در مقابله و ثابت در مقابل مکاید شیطان مثل ابراهیم با سنگ بزنی اینجا ابراهیم سنگ زد تا یاد بگیری بقیه سنگارو کجا بزنی کجا بزنی بقیه سنگا رو تو دوکان بزن تو معاملات بزن تو معاشرات بزن جایی که وسوسه بس شیطان اومد جایی که حسوامت جایی که آزمندی اومد اونجا یاد از اون سنگایی که اونجا زدی حفاشو اونجا زدی یاد در انجام یه سر ویزه‌ایم تو فکرت فقطون به طرفش بگو شیطان نمیتونی منو گرو بزنی این ما وقتی خودمون داریم به خودمون زور میکنیم در حدیث آمازی که کارگر هنوز عرقش خوش که نشده پولشو بده ما تا خونشو خوش نکنیم مثل زالو رو. یک پولش پولشم بهش نمیگه بعدم که دادیم چی کار بگنیم؟ بگیم؟ کل من هم سرش میکنیم من بگیدم و یعنی اگر من خوره حالا هره اینکرسی از بده ندارم من میگم نیست تورمه من میگم شرایط اقتصادی بده من میگم همه چیز داره فلک میشه عزیز من قبول تورم دلار نمیست شده نمیدونم سنگینی آمده اما چه دلیلی داره که هر سال تو یک ماشین جدید سوار بشی و پول کارگرتو تو نبید چه دلیلی وجود داره که هر سال یک آپارتمان رو آپارتمان دیگه درست کنی حق کارگر ندی چه ملیلی وجود داره که فرش زیر پای تو حتما باید مدل فلان باشه نقش و نگار فلان باشه پول کارگر ندی هر سال مولمان خانه یه تو بشه پول کارگر ندی دلار شده اینقدر قبرم شده اینقدر این را به دلار داره این شرفتی به ترام داره اینا را درون منه اینا ترامپ درون منه به خدا من کارگرد میدم یه جایی دل سنگ براش آب میشد و کباب میشد زنگ میزنه فلانی پول رو بده به خدا شش ماه گذاشته والله تو بیمارستانم راست میگو من خودش خودم میبیدم می این زنم به خدا مندم والله به زبا دکتر زنم مندم پولم رو بده میگه فلانی ندارم یه ماشین آخری سیسته میداشت من اسمشو نبرم چون الان بگم فورا تو زرنات ترش میشه کی ماشینو داره پس همون فوری به قول منو میگه به دور از جامعه ما دور از جامعه ما دور از جمعه برای تنوع میگم برای اینکه خسلیگی شما در بره میگه به فضولی گفتن که آه اگه فضولی نکنی نصف جهان رو بدونید داشتن دیگه فضولی نکنی و چشف فضولی که نمی کنم از این بعد تاثیر رو فقط اون نصفه دیگه رو به کی میدین آدم فضول اگه هر کارش بکنی بازم کار خودش رو بکنی گاها ماشینت فلانه ذابازشو به فروش پول رو بده کارگرین رو با هر و فلانی ماشینت فلانه ذابازشو به فروشی پول سه تا کارگر مثل منو میتونه بده تو رو به خدا ذابازشو به پول ما رو بده. چه دلیلی داره, داره تو ماشین فلان سوار ماشین پول کارگر نمیدی دلار گرون شده ترجمه نیم کرده. اینا دست دلار یا دست ترجمه؟ اینا دست کیه به خدا تنها بابایی زنجانی ظالم نیست ولی همون هم کسایی که امروز اختلاص های کلان کلان کردن و ما رو مکیدن و وردن و رفتن اونا تنها ظالم میستن ما دستمون نمیرسه و یه همونه ما از این اختلاص خیلی خوش ما ما تو حد خودمون داریم فساد اقتصادی میکنیم ما تو حد خودمون داریم ضربه اقتصادی به همدیگر میزنیم دستمون نمیرسه اگه در تک تکمون با بگذنجانی دستمون نمیرسه و یعنید تک تکمون مقصد اقتصادی هست و ملتی که با این طریقه دار زندگی میکنه خودشون به خودشون رحم نمی کنن توش بدترین شرایط اقتصادی حالا در رابطه با علی خواست رحمت الله تلالی از ارافا هست کشان آزم حج بود آمادگیش رو کرده بود با یک کاروان میخواست حرکت بکنه تو همون های آخر و خداحافظی ها رفت که اون مزبله و آشغال خونه شو بریزه بیرون بعد دید که یه زن میانسادی تو مزبله ها و آشغال ها یه مرغ ای رو خود ای رو برداشت و رفت بشت گفت این کجا میبری اینو؟ <متحد> خب شما به کار من کاری باش گفت که خود خب نه من میخواب چیزی بفهمم ببینم چه به دردت این مرغ مرده؟ خب میخوام بدم بچه هام بخورم. خب این که جایز نیست که برای تو جایز نیست. برای من جایزه. یعنی چی؟ چرا برای شما جایز برای من ناجایز؟ گفت ببین من بچه هام به حد مرگ رسی. چند شبان روزه که حتی یک لقمه که تد در وقت بکنن و جلو گرستگیشن رو بگیرن نداشته. برای همین همین مرد مرده رو طبق فتوه من میخورن. برخلاف سقوه فا بچه هم از مرگ نزارت میدن. قلبن حضرت علی خواست رحمت الله تلالی بود گفت کجاست؟ من فلان میشینم. تو فلان کوچه میشینم. ای خواص نگاه کردنی که همسایه من دوست در اون طرف تر میشینه تا چهل خانه این طرف؟ تا چهل خانه این طرف؟ اینا همسایی های من هم تا چهل خانه؟ یک مرتبه فریاد و فغان از علی یا الله وضعیت همسایه من اینطوری تو اون وضعیت داریم زندگی میکنه که مردار میخواد تا زندگی بکنه من از حالو بی خبر همین پول حجر رو گردار برد دم این پیر زد بشکف اینا خرد خودتو و چهارت بکن من از میخوام فردای جامت پیش الله شکایت نکنی که چرا من از حال همسای خبر نداشتم به خدا من گرفتار و خودم بودم جلوتر باید به شما رسی بگی میکردم من از خواهستم تو میدان محشر یقی من رو نگی. جلوی رسول پاگرین صلات و سلام شکایت منو نکنی. بگیریم پول رو خواهران خرج خود تو زن علی خواص با دل شکسته که امسال نتونست حج بره برمی کرده کاربان میان که جناب شما نمی آید بریم آزمی من, مشکلی پیش تو؟ تو آزمی پیش آزمی من نمی امسال مشکل پیش آمده نمیده چطور تو از همه پیشگام تو از همه جلوتر تر من نمی امسال شما بریم قابل حضر افتار یکی از همین کاروان که قرار بود با همین بزرگی به حج بره در خواب یک حاطف یک سروش غیبی رو شنید که بهش گفت حج امسال هیچ کدوم از حاجی قبول نشد جز علی و به او اللہ تعالی حج دیگران در هم قبول کار که برایش پیش این بزرگ‌مان که طرف دخدا حساب چکار کردی که این حج معقول را مثال و به حجی که حج می‌وجب جا انسان را قبول کرد چکاری که دل دست دل دل دل و دل دست این رو ما ست دل رو میشگنیم صد نفر رو زیر پای خودمون تو فشارای اقتصادی له میکنیم بدترین شرایط رو برای دیگران فراهم میکنیم بعد فکر میکنیم عابدیم زاهدیم متقید فکر میکنیم جنس مال تو سر امروز همون کسایی که ما از محبتون ها میذریم اگر زنده بشن و بیاد آقای مسیحی اگر امروز این صابیات به تو نمره چند میده آقای یهودی اگر امروز موسابیات به تو نمره چند میده آقای سنی امروز اگر عمر بیاد و ابو بکر بیاد خلفای راشدین بیاد و الزهرا و آیشه سدید مادرت بیاد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 به اون بد وقتی که یک امضا میخواست سند دفعه رو میدونه به صد دو اتاق. یک کار میخواد بکنه اما چون با همکارش نخواست چایی مبارد تلفون داره و میگه برو یه حفظ بد بیار این بلزینی که این سرس کرد صرف ایاب و کرد تو خیانت کردی این اعصاب خرابی که این آقا پیدا کرد رفت تو خانه به زنش ظلم کرد این خیانت از تو بود این آقا اگر رفت با این اعصاب خراب تصادف کرد و شهر و به تو بس بودی آقای کارمند که یک امضا میخواستی با این خودکار از و نکرد چقدر کاغذ بازی چقدر دوندیگی چقدر اتاق به اتاق چقدر یک طرف رو باید بدونی تو یک امضا میخوای پای یک برگه بزنی چه خبره؟ با و رعیتش این کار نکرد که تو به عنوان کارمند امروز داری با ارباب روزی خودت می‌گاری تو این پست و مقام رو برای خودت باید یک امانت ببهمی کو عمر بن عبدالعزیز هایی که دوتا تا چراغ جلوی میزشون داشتن طرف وقتی میامد یک سوال شخصی یک سوال خانوادگی میخواد ازش بکنه این چراغ خاموش می‌کرد چراغ دوم دو روشن چرا فتیله شو نیاز به روشن بشه گفتن این چه کاریه چرا اون رو خاموش ترین میگفت این از بیت المال این نفت این فتیله نباید اینجا مصرف بشه این سوخت حالا نفت اون زمان نبود این سوخت اینجا نباید مصرف بشه این کار شخصی داره تو این کار شخصی من نباید خیانت کنم دو ما عبدالaziz دوستان بریم فلان کار رو انجام بدی. گفت من امروز فلان مسئولیتی دارم دو فردا انجام میدید دو کار فردا رو که انجام بدید من به وقت رعیت خیانت نمیکنم. به وقت رعیت هم خیانت نمیکنه. نمی کارمندی که پشت میزش مردمو میدونه رشوه دونه رشوی گیره. حق حساب می گیره. کارمند خودش رو به این اتاق اون اتاق میندازه این هم خائنه. این هم خائنه.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 چه, خبره؟ چه دارید اعلان میکنید؟ چی،, چی رو دارید فریاد میزنید؟ عروس جلوی ماشین نشسته، مصورها، جوانهایی که هیچ فکری ندارن، هیچ مقصدی ندارن و تمام سروتشون همون موتور زیر پاش. فردا صبح می میدینی رنگ پیستون مطرش دستش از اینجا و اونجا از اینجا و اونجا, اونجا پیش فلانه یک کارت به کارتی بکن پیستون مطرم رنگ مطرم فلان شد. یه هفته موتورش باز افتاده این جوان هم دنبال اینها بوغ بوغ دنبال ناموس اینها ماشینا ها پشتر دیگه رو قطار دو لائن رو بستن دو لائن رو بستن افتخار شده که ما لائن ها رو بستیم با سرعت کم تو جاده دار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 یک نفرین آهی از دل این مریض برند شد یک نفرین و یک آهی از دل همین پیر مرد و پیر زن برند شد یک نفرین و آهی از دل این مریض بلند شد دعای مریض مثل دعای ملیفت قبول می شود ب长ین بس از این عروسی تو میخوای خیر ببینی از این شب اول عروسی اولین قدم زندگی مشترک تو می چی ببینی ای این چه معاشره یه این چه اخلاقیه؟ دیانت نه من ششه ماشینمو دادم اون تو مسیر گیر کرده بودم به اون ماشین بقلی گفتم گفتم دیانت نه دینداری نه تقوا نه تو رو به خدا قسم همین اقلانیت یا همین فرهنگ اسمین رو چی میتونی بذاری؟ از دین نه دین رو میذار کدوم فرهنگ، کدوم امانیت که شما این برخورد تو قیاب دارید میکنید؟ هنوز صحابت من تمام شده یا نشده جلوی همین کاروان یک لد و کو یک زد خور ریختن به هم دیگر، زدن سر کلی همدیگر یا اینا میخواد بیت المقدس رفت کنم اینا میخوان تلاوی پر و پرچم اسلام احتزاز در بیارن اینا میخوان فرزندان علی مرتضا و فاتح خیبر بشن اینا میخوان مشتی به دهن تلاوی ها و کاخ سفید ها بزنن اینا میخوان عزت دست رفته اسلام و مسلمین رو به اینا میخوان ایران و یونان مشرق زمین کنم. اینا قراره دو مرتبه عزتهای از, از دست رفته رو به ما برگردونن نگه اکو چه وضیعتی درست شد من ماشی رو تو خاکی و رفتم اما والله قسم تا نیم ساعت من پشت فرمان نمیدونستم دونستم میکنم. تو کجا میرم یه وضعیت یه حاله فقط خود ذات الله میدونه اون لحظه بر من چهالتی چه حالتی تار شده بود یه الله اینا چه میکنه کجا میره این همه قهطی این همه خوشداری این همه زبر این همه فشارهای اقتصادی این همه در حقیقت فشارهای مختلف در عرصهای مختلف بغرانها معضلات که اینی اینا به خود بیان کی این میخواد اینا متوجه بشن کی این میخواد الله یارم تا کی این میخواد چوب خدا به ما بخوره و ما به که به خدا نزدیک بشیم از خدا فرار کنیم یا آقا چی کن خوب شد نفر بغل دست من یه عزیزی بود که حرف دل منو رو میفهمیم تحتیقه یک ربی باش صحبت کردم یک کم صبب یک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 به خدا وقتی که مایی که در به در کو به کو منزل به منزل شب به شب هر کجا میگردیم وقتی این وضعیت رو میبینیم والله میخوای ببینیم کلا این چه وضعیتی این درد دل رو به کی بگیم این زخم دل رو به کی نجوم بدیم به کی بپردونیم این جامعه به کجا داره میره چه کار داره میکنه اگر امروز رسول علیه السلام و سلام این معاشره ما رو این معاملات ما رو این مجلسای شادی و عروسی این مجلسای تازیه با مرد ما میده با مرد سنگ یا من چند روز بیشتر من انداختم پایین باید بعد از همین عروسی کجا بریم به خدا بعد از همین عروسی من رفتم همین قبرستان همین کیر شادا گفتم اینجا برم یکم این س سنج قبرا که سنج قبر فرعونی دور می‌سنج قبر شدادی دور می‌رو قبرش تصویر داده رو قبرش عکت داده چند صد هزار تومان میلیون تومان تو همین شرایط اقتصادی آماده صرف قبرش کرده و خدا این صحنه رو با چشمم تو قبرستان دیدم با قبر عکس سلیفی می‌ده. والله دی زمینو به چشمم ساخت <تصفيق> والله دعو می کنار حیدا در جسر بیری یعنی والله گفتم یا الله اینم قبرستان این قبرستان ما این حد و مرض جامعه مثلا زنده ما امروز اگر تو ترامپ رو بر ما مسلط میکنی یا بهتر تر رو به ما مسلط میکنی ما شایسته نی به خدا ما شایسته دست دستمون نمیرسه و اگر تک تک ما یک ترامپ دست ما نمیرسه و اگر تک تک ما یک پوتینی دست ما نمیرسه و اگر ما هر کدوم ما تمام اقتصاد لسونجلس رو آرزو می‌کنی نفس ما ولی بعد میام دیگران رو تخته میکنیم بعد میام دیگران رو مستحام میکنیم بعد میام به دیگران میذاری، آها، خودم کجا میرم؟ ما خودم دارم چه کار میکنم؟ تو پادشاه یک خانواده، یک تشکل کوچک، یک نهاد اجتماعی کوچک به نام خانواده هستی پادشاه همین که توی تو, تو همین مملکت کوچک چه کار کردی؟ اسلام چقدر زنده کردی؟ چرا پادشاهان عالم و بد میگی اونا بد تو خوب باش تو همین تو همین تشکل کوچک تو همین نهاد اجتماعی کوچک تو پادشاهی چه کار کردی چقدر به اسلام زنده کردی ادالت توش ها؟ بی نمازی برداشته شده؟ بی برداشته شده؟ لغمه حرام از توش برداشته شده؟ چشم می و رقابت های ناسالم از توش برداشت شده؟ اسلام تشتنده شده نمونه ای از خانه اهل خانه, خانه آل رسول نمونه ای از خانه ارقم درست کردی یه چیه این خانه یک ای زمانی اول این قلب خوش بود لانه جاسسی آمریکا رو زدیم دابون اما الان هر خانه ایم و با این رسانه ها با این شبکه های امروز این لانه جاسوسی به خانه خانه ما رخمه کرده و هر چی میخواد در روح و روان ما داره ایجاد میکنه استعماری بر فکر ما استعماری بر عقل ما استعماری بر درون ما الله اما الحمد لله و المننا انذکی باتو دل ترسیدم که دل ازورده شه و بر نفس خن بسیا ما اینو گفتم درد بود چون خودم میخواستم حالت استفاب داشت یه وقت خدا انصاب بکشه اما دوستان من یا یک چیز رو بگم که باطل باطله تاریکی هر چقدر تاریکی سختی باشه در مقابل یک شم هم یارایی استادن نداری تارهای انکبوتی هر چی این خانه رو بتنه تارهای یارای مقابل با یک جارون نداری یک جارون نداری برای همین از باطل نه سرسیم. از باطل ریشه نداره. باطل اساس نداره. باطل بنیاد نداره. به خدا آقایت همه برگردن. و الله همه باید برگردن. همه باید با الله سؤال کنن. راه دیگه اینی. ما بلند بشیم. و الله و میگم. بدون هیچ تمله بدون هیچ گذاه اگویی رو من دیدم یک نوجوان زایباد یک خاندان را عوض کرده یک یک نوجوان. بر باطل کل قوم خودش چیره شده تو همین شهرستان زایباد ما خواهر داشتیم که یک خواهر، یک خاندان را عوض کرد یک خاندان را عوض کرده مسیر زندگی شده حق رو من در خودمون مشعل هدایت بشین منشه خوبی ها بشین خوبی ها آره رو در خودمون زنده کنیم باطل در مقابل این حق یا رایی نذاره باطل رفته باطل نابود شده نیه ترین قسمت شب همون لعظاتی که قرار پشتش چی خرشیدی طلوع شد تاریک شده تاریک شده ظلمانی شده اما انشاءالله خرشیدی در حال طلوعه اکثر این رو نگاه کنیم کی به شما بعدی دنیاوی داده؟ بعدی مادی داده؟ کی به شما گفته بیاید اینجا زنده باد و باد بگید و بعدی سیاسی و بعدی مادی داده؟ هیچی نیست؟ حتی ایوان آب هم کسی به شما نمیده اما چیه که هر هفته اینجا جمع میشه؟ چی شما را جمع کن؟ من پیدا و دلبر ناپدی در در عالم این چنین دلبر کلی اسم ما واحد هست این تجمع ما در خانه الله پیدا اما صاحب این خانه بظاهر پیدا نیست بظاهر پیدا نیست در دو عالم این چنین دیواری کی بی اینطور دلبری در دو دل عالم که خانش هر هفته پر خودش بظاهر دیده نمی‌شه چه اسم اورور نمی‌دینه دلها در قلب طور الله اسم می کنه موجود ما داره شهادت میده اگر فردوس بر رویت رمینه همینست و همین و همینه روح و روان ما فریاد میزنه گمشده ما نجا همه به الله کنیم همه به الله کنیم و همه تلاش کنیم تا بنده های الله رو به الله صلو بلیمشه خوبه؟ تنها به این که گلیم خودم عذاب بکشم ایسا دین خودش مصابه دین و خودش به این اکتفا نکنی در این موج و این طوفان بیدینی تنها راه مقابلش یه چیزه و اینه تو پرنده ها فقط آقاوه که روی عبرها راه همه این دیگه پلاش میکنن با بارون و تگرد بجنگن اما آقاوه یه کار دیگه میکنه به جای که با بارون و بجنگ. کجا بجنگه می بعد میدو حالا با من داشتیم. بیایید یک اقاب بلند آشیان باشیم. و من رویه همه این عبرهای تیره بیستیم و خورشید حقیقتت همون جا جستجو کنیم. این فسادها، این شعبتها، این گناهایی که به ما میگه هی تلک مثل یوسف از همه اینا فرار کنیم. ما هم مثل یوسف اون بندهی که الله میخواد باشیم.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 اگر مثل نمرود کل دنیا رو هم به دست بیاریم الله رو از دست بدیم زرن که والله صور کنیم بالله اشتی کنیم زندگی ها رو عوض کنیم از ادعا و انتصاب دست نه نبا ادعا کار درست میشه نبا انتصاب کار درست میشه با یک چیز کار درست میشه مسلمان واقعی باش. اسلام واقعی رو تو همه شعونات زندگی خودمون پیاده بکنیم از تأثبات برداریم توصیه ما به همه همینه تو این عاشفت بازار آخر الزمان و شانه به هم نکشیم یهودی، مسیحی، مسلمان همه به همه بجای اینکه این که به زور بخوایم خودمون رو بر دیگران تحمیل کنیم و به زور بخواییم به دیگران بقبولونیم که ما به حقیم بیاییم حقانیت رو تو عمل خودمون به هم نشون تو معاملات، تو معاشرات، تو اخلاق تو تعامل، تو همزیستی مصالب تامیز به همه دنیا بزهمونیم که دین ما دین رحمت واقعا اگر چیزی داریم این بعد رعفت و رحمت دین خودمون رو مذهب خودمون رو بذاریم به سهل و به همه بشریت حق انتخاب بدیم که هر طرف دوست داریم بریم لا اکراح دین در قبول دین هیچ اجبار و اکراهی نیست هرچه دوست داریم اگر کسی دین من رو هم قبول نکرد، من حق توهین حقا تمسخور ندرم، حقا استئذاء ندرم لا تصب الالذين يدعون من دون الله حتى اگر كثيرا غير الخضائي من من حقا توهين، حق لعنت، حق فوش وفحوش وفحوش ليس المؤمن باللعان، ولا الفحوش، ولا البريد مسلمان، لعنة كنان ده، فوش كنان ده، مسلمان نيس نظر شحن مسلمان در قوموس الإسلام نيس انكارها، بجائن نفرت پراکنی کنیم و به جای اینکه تلاش کنیم تا هم دیگه و تخلیب کنیم، تلاش کنیم تا خوبیه های خودمون رو به همه بشریت نشون بدیم ویکرین خوبی ها بشون. بذاریم بشریت خوبی ها رو در ما ببینن و اگر خود اونها خواستن به سمت ما بیاد و اگر به سمت ما نیامدن ما حق نداریم که اونها رو تخته کنیم تخلیب کنیم توهین کنیم این در شعن یک مسلمان و در شعن یک انسان نیست مسلمان بمانه در شان یک انسان یهودی هم. هم مسلمان هم همه و همه تلاش کنیم که به خاطر اینکه از این آشفت بازار رو آخر زمان نجات پیدا بکنیم خوبی ها رو به هم دیگر برسانیم بله و تلاش کنیم که منور خوبی ها باشه منور اعجازش ها باشه هر کس امروز نظامی زیاد شده مانوبره های مالی زیاد شده اما مانوبر اخلاق نیست مانوبر انسانیت نیست مانوبر کمال و بشری نیست این مانوبره رو بدیم بذاریم قیصر روم وقتی عمر رو برای اولین دست ملاقات کرد نه از قصر عمر متاثر شد تو متنبیم یا غصایه بست قصر عمر کجاست قصر عمر کجاست تخت تاج عمر کجاست قطاری نداره عمر کجا از تو نخلستان خوابی ده غیسار و سفیر قیسر وقتی به اونجا یه یک روی این زمین افتاده تاکش را رو سر کرده وقتی او دید این اینسان ادالت کردی که این زیبا خوابی ده شد به افتاد سیدنا فرو هزم از خوابی این بیچارتو می لرزه این چی شده؟ چرا می اینجا مولانا ضربه ای کاری شد تو شعر میذاره میگه حیبت حق هست حیبت این مرد صاحب دال نیست هر که ترسید از حق و تقوی ترسید از روی جن انسو حرکتی اینو در خودمون زنده کنید منور انسانیت منور اخلاق منور خوبی ها و عربش ها اینو به دنیا نشون بدیم. بذارید خود دنیا قضاوت کنند خود دنیا انتخاب کنه، خود دنیا بیان به سمت ما قبل از اینکه ما بخوایم به زور اونها رو وارد دین کنیم. اونها از راه دین اسلام ما رو، دین ما رو بخان و فضیلت، و وارد دین ما بشه. این زیبا، این قشنگی. هیچ ملت قومی با اصله عوض نشد. نه قلها، نه تارها، با افلحه کسی رو نتونه سلام از هولوکاست حالت نعمت دیدی رو عوض کرد به خدا جنگ کشتار خشونت مردم را عوض نمی‌کنه اشتباه میکنن کسایی که فکر میکنن با خشونت میتونن دنیا را عوض کنن دنیا با خشونت عوض نمیشه نه چنگیز خان نه هالوکوست نه اطلس نه نوبل او هیچ کندومی نا با زور نتونستن دنیا را عوض دنیا دنیا بازور عوض نمیشه دنیا با منور آتش عوض نمیشه آتش رو به زمین بذاری مثلها رو به زمین بذاری و این به بعد منور ایمان شروع کنیشه همه خوبی ها رو در خودمون زنده کن قلطه بعض جا میگن از یک گل به نمیشه قلطه قلطه مگر یک گل انبیا یک گل نبودن انبیاء روزی که مبعوض شدن چند نفر بودن؟ چند نفر بودن؟ یک نفر آیا از این یک گل بهار شد یا نه؟ از یک خانه، خانه ارقام در مکه مکرمه، از یک خانه، این همه خانه ها عباد نشد مگه؟ بله تو اسلام ما یک گل هم بهار میشه، تو گل باشی، الله تعالی گردفشانی از تو نیکنه، و گل ها رو با تو پر تو من شیخ ها بیام شید، به شر بگه رو بدور از تعصب ها و تسلق ها در خود از